برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید برنامه ریزی روزانه برای اینکه کاراییتون رو برابر کنید کاملا ضروریه باید فرمول برنامه ریزی درست از قبل جلوی عملکرد ضعیف رو میگیره رو برای موفقیت عالی به کار بگیرید برنامه ریزی درست ویژگی افراد متبهره همه مردان و زنان موفق برای برنامه ریزی کارهاشون از قبل وقت زیادی صرف میکنن قانون ده نود رو یادتون باشه که میگه ده درصد اول زمانی که قبل از شروع کارتون برای برنامه ریزی کارهاتون صرف میکنید باعث صرفجویی در نود درصد زمان لازم برای انجام اون کارها پس از شروع کار میکنه همیشه روی کاغذ فکر کنید وقتی قبل از شروع برنامهاتون رو به تفصیل روی کاغذ مینویسید اتفاق شگفتانگیزی بین مغز و دستتون میفته نوشتن واقعا باعث میشه زیرکانه تر فکر کنید. خلاقیتتون رو برمیانگیزه و تمرکزتون رو خیلی بیشتر از وقتی میکنه که سعی دارید ذهنی کار کنید. برای شروع، از هرچه به فکرتون میرسه که در دراز مدت می‌خواید انجام بدید، یک فهرست کلی تهیه کنید. این فهرست کلی تبدیل به فهرست کنترل اصلی زندگیتون میشه. هر وقت چیز جدیدی به ذهنتون رسید که باید انجام بدید، اون رو در فهرست تون بنویسید. اول هر ماه یک فهرست ماهانه درست کنید و هر کاری برای انجام دادن در هفته های آینده به فکرتون میرسه رو در اون بنویسید. بعد فهرست ماهانتون رو به فهرست هفتگی تجزیه کنید و مشخص کنید که کارهایی که برای این ماه در نظر گرفته بودید رو دقیقا کی شروع و تکمیل می کنید. دست آخر و احتمالا مهمتر از همه. فهرست روزانه ای از فعالیت هاتون تنظیم کنید که بهتر شب قبل انجام بشه تا ذهن نیمه خود بتونه وقتی که خواب هستید روی فهرستتون کار کنه همیشه از روی فهرست کار کنید وقتی ته روز چیز جدیدی پیش میاد قبل از اینکه انجامش بدید در فهرستتون بنویسیدش موقع کار کردن هم موردی که تموم میشه رو تیک بزنید این رد گذاشتن به شما احساس مداوم به نتیجه رسیدن و پیشرفت شخصی میده یکی یکی خط زدن موارد ترغیبتون میکنه و واقعا به شما انرژی میده. این فهرست به جای یک کارنامه به کار میره و به شما احساس برنده بودن میده. به شما میگه که کجا در حال پیشرفت کردن هستید و روز بعد باید روی چه چیزی کار کنید. به عقیده کارشناسان مدیریت زمان، کار کردن از روی فهرست از همون روز اولی که شروع به این کار میکنید، کاراییتون رو تا 25 درصد افزایش میده. همه افراد بسیار موثر روی کاغذ فکر کرده و از روی فهرست مکتوب کار می کنند.